فصل پنج امام حسن مجتبا علیه السلام مناجات با امام مجتبا علیه السلام ای تو پور مرتضا یا مجتبا عالمی بر تو گدا یا مجتبا ای کریم با دستم بگیر هم به دنیا هم به اغبا مجتبا ربایی ولادت امام حسن مجتبا علیه السلام تبریک رسیده حسن ابن حیدر از بهر علی گنچه ناز و دلبر شد نیمه ماه حق بگو تبریکی با یک سلوات بر برگل پیغمبر ربایی ولادت امام مستبا علیه السلام تبریک که عشق مستفا می آید امشب ز مرتضا می آید تبریک که مادر شده امشب زهرا یک غنچه به نام مجتبا می آید ربایی در مدح امام حسن مجتبا علیه السلام با ذکر حسن معجزه در دنیا شد با نام حسن قیامتی برپا شد با ذکر حسن دوباره جان میگیرم هر قطره به نام نامیش دریا شد ربایی ولادت امام مجتبه علیه السلام آمد حسن شب همه را مولا شد از یمن قدومش همه جا زیبا شد تبریک به کل شیعان عالم باب کرم از سوی حق امشب وا شد ربایی فلادت امام حسن مجتبا علیه السلام امروز دوباره شیر حق بابا شد از مقدم او هر دو جهان زیبا شد تبریک به احمد و بتول و حیدر امشب شب ذکر سلوات ما شد درمد و شهادت امام حسن مجتبا علیه السلام. ای پسر مرتضا یا حسن ابن علی زاده خیر نسا یا حسن ابن علی روز ولادت شدی زینت دوش پدر زینت ارض و سما یا حسن ابن علی اسم تو از سوی حق وحی به ختم رسول نام تو شد مجتبا یا حسن ابن علی چونکه که به دوش نوید زینت و آرام جان ای نبی مصطفی یا حسن ابن علی هر که کند گریه بر هستی ختم رسول نری زدشک اقبا یا حسن ابن علی